در رفتنش که یه مسیر بحث دوره های آزادی که بیرون برگزار میشه این دوره ها توشون سازمان مدیری از خیلی خوب برگزار میکنه استادهای خوب خوب درس میدن اگه کسی خواست حسابداری بخونه دانشگاه نره آره مدرکاشم معتبر بعد انجمن حسابداری ایرانم هم همینطور این جه ها رو بگیدن اگه خودش میخواد بشینه تو خونه کتاب بخونه که کارت سختیه تو حسابداری ما کتاب های حسابداری اصول حسابداری یکی پیام نور تو پیام نور مال اونهایی که آره ولی کار سختیه حسابداری بدون استاد خونده <تصفيق> ولی کل حساب دارید این کار است و هی توسه پیدا میکنه شبا خب زیاد میشه, میشه. اینو که اینو خوب یاد بگیرید برید جلو ایش دارید. ایش دارید. ایش دارید. حالا ما میخوانی راجعه به چی صحبت کنیم عدیلیت ما هست تعریفش علمو دانش اداره پوک یا یه تعریف دیگرش تصمیگیری در خصوص قسمون در خصوص تأمین مالی و سرمایه گذاری برای رسیدن به هدف در تامین مالی, مالی. <تصحنت> یعنی چی؟ منظورم از تحمیل مالی منظور از تحمیل مالی سمت چپ ترازدامه یعنی پول از کجا بیاریم؟ و منظور اونم از تحمیل گذاری سمت راست است. یعنی این پولا رو کجا به کار بکنی در حقیقت مدیریت مالی یعنی بهین کردن ترازدامه پایین تری نرخواب هم تو بالاترین دارای ها سرمایه گذاری کنید با بالاترین نرخ بازدارید و هم میگه برای رسیدن به هدف هدف هم چیه؟ معمولا تو شرکت ها هده اکثر کردن سود و هده اکثر کردن ثروت اولین هدف شرکت تجاری اینه دیگه شرکت غیر انتفاعی که هدفش فهم مثلا بهزیستی یه هدف سود نداره آتش نشانی نمیدونن شهرداری ولی یه شرکتی که بیزینس نه کارش هدف سوده منظور اون هم از سرور چه سرمایه, سرمایه. سرمایه. یعنی همین سودهایی بیاد به سرمایه هاش اضافه شه هم سودش بره بالا هم سرمایهاش هدف های دیگه هم دارن شرکت ها که باید یه استدای ما داریم ساستین ابیلیتی یعنی چی؟ کنه جی هل یا داشتن توسعه پایدار شرکت ها توسعه پایدار شرکت‌ها اینکه پایدار بشه یعنی ابدی بشه یه شرکت موفقیتش ماندگار بشه و یاد هم عملکرد مالیش خوب باشه هم عملکرد اجتماعیش و هم عملکرد زیست محیطیش داره راجعه یه هدفه میتونی یعنی بگیرید از سود این سوده میشه عمل کرده چی مالی؟ چیزهای دیگه هم مهمه اجتماعی منظور احترام به نیرسانیه به پرسنلش سلامتیشون به احتراشتشون یا شرکت در مثلا کارای خیلیه مثلا دیدین قدمچی الان عملکرد مالیش عالیه این سیلی که بودن اومدن پول دادن دورای قلمچی حالا برای که دیگه خودشو ابدی کنه ماندگار کنه موفقیتشو همیشه میکنه کنه اومده رو کارهای چی مدرسه می سازه بعد رو نشون میده تو جای محنوب و لایان یا عمل قاعده زیست محیطی مثلا می‌بینی سایپا قبلی بروست کرده که پرسنلش با لباس سایپا رفتن مثلا فردا 13 به در دارن تو جنگل و اینا آشغالو جمع کار اینا که این نیست ولی دارن نشون میده که ما محیط زیست پرامون مهمه و تو دنیا همینطوریه شرکتایی که محیط زیست احترام نمیذارن یا به محیط زیست آسیب میزنن تو ایران فرهنگش پایینه خیلی گروه‌های محیط زیستی قدرت دارن و همین کافیه که اسم یه شرکتی بد در بره که اینا دیگه هیچ که ازش غریب نمیکنه یعنی یا واقعا به محیط زیست احترام میذارن یا شو میدن نشون میدن تو تبلیغاتشون که ما به محیط زیست احترام میذاریم مثلا بانک کشاورزی تبلیغ درست کرده که دیگه درختی قطع نمیشه دیگه کاغذ تولید نمیشه مصرف نمیشه بانکداری الکترونیکیه برای نشون میده تبلید می کنیدید که ما محیطزییک برای مهمه پس هدف شرکت ها فقط کسب سود نیست اهداف اجتماعی و دی هم باید داشته باشند منظورم این بود ولی اولیش همون عملکرد مالی و سوده شما وقتی مییه کار خیلی میکن از سود داره کم میشه یا وقت وقتی مخوابی به محیط احترام بذاری باید هزینه کنی براش دیگه صدت کمه اینا فرضش بر اینه که جامعه این تلاش های شما رو میفهمه و میاد از شما خرید میکنه و این جبران میشه در بلند مدت حضینه که شما کرد با این فرض هستیم خب پس ما تو مدیریت مالی می سمت چپ و راست ترازنامه رو خیلی روش تمرکز کنیم تحلیل کنیم راه های مالی پیدا کنیم که نرخ بهنش پایینه از این طرف توی دارایی هایی به کار بگیریم نرخ که نرخ بازدهش بالاست تا به چی برسیم؟ به سود برسیم هم به این یکی هم باشه این میشه تعریف مدیریت مالی هیچ موقع ما تو کتابامون نداریم که شما به هر روشی به سود برسید. یا مثلا اینا رو دعاون کن به سود بگذید یا یکی رو همیشه اینا رو هم در کنارش داریم <تصفيق> پس این از تعریفش تعریف مدیریت مالی نکته بعدی وظایف مدیریت مالیه و تحلیل و برنامه ریزی و تحلیل تأمین مالی و تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری. گذاری کار مدیریت مالی تیه و تحلیل آنالایز تو هر کدوم از این وظیفه ها ما یه سری تکنیک رو ابزار داریم مثلا نقطه سندسند اهرام نسبت های مالینا رو میخونیم این تکنیک ها که میخونیم مال وظیفه یک یا تعیزی و تحلیل تحمیل مالی راه های مالی تیز و تل سرمه گذاری بوجهوندی سرمانیه ایلی خود اینجاست بوجه توی بالایی هست، برمومه زیر یه پس تا وزیفه کلی براش خواهیلیم که حالا درسایی که میخونیم هر کدوم داره اینا رو پوشش میده استاد نقطه چیه؟ سرده سرده, سرده, سرده توب و چه؟ پژه مالی ترمین می‌دارن عادت می‌کنی؟ تا می‌عادت به این خطه یا ای استاد بود خط که می‌کنی؟ از این استاد می‌کنم با بعد خطش می‌کنه؟ نه خب اینم از عذایر لقطه بعدی اینطور این بردی کسا بود یعنی چی سرمایه رو بردی فیلم دقید اینا همه رو ما کار یک بحث بنیادی رابطه ریسک و باز تو مدیریت مالی خیلی مهمه و اینو باید تو ذهنتون برای همیشه این مفهوم ثبت کنید صبحبطه ریسکو و بازده این ریس این باز expectation یعنی بازده مورد انتظار. کی میتونه بایگه یکی مفهوم این عبودار چیه؟ اون بیشتر, اون باشه که. ریسک بیشتر باشه، بیشتر اون خطر باشه باز ریسکمون بیشتر باشه بازم این ازیره. بهتره خب این نمودار یه نمودار یعنی میخواد یه مفهومی رو به ما آموزش بده خب محور افاقی که محور ایکس هاست اول ما با ایکس شروع میکنیم اثرش بدیم رو ایگره که محور امودیه چقدر یعنی چی؟ این نمودار نشون میده که هر چی شما ریسک بیشتری بکنید باز به مورد انتظارت هم بازدهی که انتظار داری بهش برسی ممکنم بهش نرسی یعنی این کلمه خیلی مهمه یعنی شما هر چی ریسک بیشتر کردی بازده قطعی بیشتری گیرت میاد هر چی بیشتر ریسک می‌کنی به دنبال بازده بیشتری هست باید باشی حالا ممکنه بهش برسی یا نرسی مثلا یه نفر که کارمند شده ریسکش پایینه چرا؟ برای که دارایی هاش در خطر نیست، خطر سرقت، فساد دموده شدن تغییر سلیقه مشتری یا فروش نسیه وصولش فیلا اینا به همون اندازهی که ریسک داره که مثلا صبح میره سر کار اصمینا گوه بشم یا بازدهشم هم به همون اندازه ولی یکی که رفته شرکت تحسیس کرده این ریسک بالایی رو پذیرفته درد زیادی داره و مطمئنا دنبال اون حقوقی که اون کارمنده به دست میاره نیست هدفش از اون بیشتره یا اونی که رفته مثلا تو کار اون یه بایدو ریسک این دنباله نیزی هندازه مثلا کارمند مای ما دوتان بیاد این ریسکش بالاست به دنبال بازده خیلی بالایی هم هست که ممکنه بهش برسه یا نه اگه بهیرنش هم مثلا 50 سال بره زندان ولی اگه میگن یه سال بیای تو این کار بگی برای یه عمرت بسته پس ما باید بفهمیم که هر کاری رو که میخوایم تعریف کنیم میزان ریسکش چقدره؟ با توجه به اون ریسکه دنبال چقدر بازده باید باشیم ما بازده مورد انتظارمون رو قبل از اینکه یه سرمایه گذاری رو یه پروژه رو یه بیزنس رو شروع کنیم باید تو ذهنمون تحلیل کنیم حالا یه نقطه هم اینجا هست این چه نقطه یعنی وقتی ریسک شما صفره درامهتم صفره نه صففر صفر, صفر شروع نشده میتونی یه بازده داشته باشی جزی میگه این سود بانکی مثلا 20 درصد ساره. این چی؟ ینی پول رو می تو بانک ریسکش صفره ولی 20 درصد بازده داره. حالا وقتی میای یه کاری رو را, را میازید ریسک می کنی پس باید از اون 20 درصد هم بیشتر گیره بیا یعنی چی؟ یعنی اگه دو تا گزینه داری تصمیم گیری کنی ریسکاشون یکیه اونی بهتره که بازدهش بالاتره و اگه دو تا گزینه داری که بازدهش یکیه ریسکش اونیه انتخاب کنید که ریسکش کمتره این همیشه باید تو ذهن ما باشه. حالا سؤال که بازده مورد انتظار ما با بازده واقعی ما چه فرق داره و چجوری ما حاسبش کنیم یعنی چی؟ بازده مورد انتظار 20% به سور بنام 20% من سوال می کنم از تک تک شما اگه سرمایه گذاری کنی تو یه سال چند درصد سود راضیتون میکنه؟ هرچی بیشتر بهتر که بحثمون نیست حداقل از اینجا از اینجا اگه سرمایه گذاری اگه سرمایه گذاری کنی برای یه سال حداقل چند درصد داشته باشه خوبه 200 درصد حداقل بعد این کار میکنی؟ چگار میکنی؟ یعنی اگه سر گذاشتی بعد یه سال میشه 300 میلیون ملیو بعد همین اتفاق میفتی یعنی تجربهش که های بعد ویژن داشته باشیم یعنی موضوعشون چیزیه که واقعا اتفاق افتاده قبلا یعنی یا, یا الان یعنی حداقل چند درصد سود حداقل از اون کمتر بشه راضی نمیشه شما من تو یه کار بیزینسی که هستم فکر می‌م بین سی تا 35 درصد درست. در سال بر سال چیزی که هستش که انتظار یعنی بالاتر از نرخ سود بانکی خب شما حداقل درصد تو 1 سود من بي بحث اعتباری هم هست دیگه یعنی یه بخش اعتبار بدی شما این بخش مثلا 100 میلیون درشت اینو در نظر نمی شما هر در نظر هر در کل کل کل بالاتر از بانکی ده ده ده. بالاترس که شما... کار پیمانکاری در ساخت حدود 20 30 درصد ولی در پیش فروش و اینطور کارا تا 50 درصد. خب 50 تا این خودش فرمول داره. یعنی قاعده داره. بازده هم برده انتظار شما اول از همه باید نرخ تورم رو پوشش بده. یعنی شما باید از تورم بیشتر گیر بیاریم چرا؟ چون همون اندازه ارزش پولتون کم شده دوام محاوت ریسکی تو این نمودار شما کجا هستیم؟ این پروژهی که داری انجام این ریسکی زیاد یا کم یه درصدی میتوانیم که در حقیقت این نمودار داره این حدد رو پر میکنه و ثبوت بابت زمان انتظار شما یه درصدی میخواد. زمان انتظار یعنی چی؟ یعنی شما امروز سر میگذاریم و یه سال وای میسید یه درصدی هم بابت این زمانه میخواد. بله. برن خود ریش آره، مثلا تورم 20 درصده یه کار با ریسک پایین هم من بذارم مثلا 15 درصد ریسک تو دنیا بابت زمان یه چیزی بوده چارپنگ درصد در نظر در میگیرن تو ایران ما به یه عدد سی و کف میرسیم یعنی از این کمتر نباید باشه بازه کاری که ریسکش هم پایینه ها عدد 15 درصد بر ریسک روش حالا این مثلا بالاتر عدد بزرگترشه. این حالا زمان انتظار ممکنه بعضی ها سوال کنند یعنی چی؟ منظور چیه؟ فرض کنید شما مثلا تو سوئیس این که تورم صفر خف؟ کل فرم گذاشتیم تو بانک؟ تو کشور بدیه ریسکش هم؟ صفر بانک سویس اونجا اختصال آه اونجا باعت اون عددی که میدم مثلا سه درصد به شما بانک صور بوده اون باعت چیه؟ زمان انتظاره برای که این مفهوم زمانه رو متوجه با بالا یا فرق داره. مثال یه مثال بزنم برای موقع خرید آپارتمان سن آپارتمان رو در سه درصد کنیم بعد مثلا ده سالش آپارتمان سه درصد کنید از قیمت آپارتمان پیش فروشی نو کم کنید میشه قیمت خارشمستی اون آپارتمان که بخرید کنید یعنی آپارتمان س <تصحنت> چون دیگه زندر 30%؟ یه بار دیگه برگوگا چیا می آپارتمان؟ نصاب کنم؟ قیمتی رو قیمت میذاریم یا آقارتمان کهانهی را مخواه قیمت ما کارشناسا میگیم سه در سر در تعداد سالهایی که از سند اون آقارتمان میذاره عمر آپارتمان از قیمت آپارتمان نو کم کنید قیمت موجود وجود برسته؟ برسته این فرور هست مثلا یه آپورت مثلا هست مثلا دو سال ساختم هست درصد کم کنیم با قیمت آپورتون در بیمه 6 درصد 5 میلیون میشه سیصد هزار، میشه چه اگه مثلا 5 سالش باشه، باید پنیش تا درصد کم کنیم باید چه به همون زمان انتظار دیگه سه درصد تو زمان انتظار تو ایران هم سه درصد هستش ولی تو عمر آفارتن نکته جالبی بود زیاد تو بست باید ببینم سالی سه درصد از ناساز کم میشه خب حالا شما دیویس درصده حداقل انتظاره خیلی خوبه باید بهش خب دیویس اینجوری میشه؟ درصد که شما, بود. بود. شما درصد بود؟ سعی میکنیم نه خب نه چه میشه اینجا پیادی کرد یه چون سیکرته کاره آیره نه حالا حالا <تصفح> <نه>. که <تصفح> اصلا مشخصه من بیش که تو تجربیش آموزشی تو توی کار ما که ایتیه، تورم تقریبا همون صرف درصد می‌تونه باشه. چون کار یه چیزیه که فیزیکی نیستش. ریسکش هم پایینه تقریبا شاید ریسکش دو درصد سه درصد باشه. زمان انتظارش یه ذره می‌تونه بالا باشه. همون پایین درصد. ولی یا سری فاکسورایی دیگه هست این، الان این محاسبه کی کردیش، آنشوی و این پینام کنم داشته نه، ببینی اینشون یه بیزنستی رو سراغ داره سرمایه اولیه شدیش پایینه سمایه اولیه هم نمیخواه بازش بالاست این حد دقلای قابل قبوله یعنی ما میگیم از این کمتر بچه ها گیرتون بیاد زرر کردین، با توجب تورم و زحمتی که کشیدین اگر مثلا 20 درصد سود کنیم تازه زودتر از تورم جو همه پولا کلا به دستوری 20 درصد ارزش کم است بعد به یه ساغا حداقل حالا ایشون داره یه کیسی رو میگه که ریس هم پایینه به جای چه درصد وازش 200 درصد اوکی مدرده. یه چیز خاصی بلد که باقی بلد نیست یعنی این. اون 200 رو نباید بیاری تو اینا بهش کنی یعنی میگه من یه جایی رو میشنستم ریسکش مثلا همینقدر یه جایی که بازدهش اینجا باشه بازدهش اینجاست امید. و کسی هم یه بلد نیست هنوز چون همی بلد بشن کم کم میگه نرکشی یه هم یه خواه خواه خواه بله با میگه سیکرته بگه <تصفيق> خب حالا بازده واقعی چجوریه؟ بازده مورد انتظار رو دوستان خوب دقت کنیم باید قبل از سرمایه گذاری تو ذهنمون تحلیل کنیم ولی بازده واقعی رو کی حساب میکنی؟ بعد اصلا آفری این واقعا چی شد؟ و این دوستان رو راحت با هم مقایسه کنیم عملکرد کردم چطوری بود این شما که میگو دیدید سرسد آخر من دومی دو چه عددی میرسید خب؟ حالا این فرمول داره این راحت عددی میشه واز لبانه این فرمولش اینه سرمایه گذاری در آیان دوره نه حالا ارزش سرمایه گذاری در اول دوره حسین بر ارزش سرمایه گذاری تا اول دوره ها دوره اون دوباریش ارزش سهام رو اول دور اون پایان دوره بود اول دوره مثلا مثلا شاید سهام سود بانکی که 20 درصد سالانه هستش دستور یه فرمول مالی باشه مورد انتظارم بذاریم خب تورم هم 20% باشه چیزی سود می‌کنیم و ضرر می‌کنان دیگه چیزی بس اینا که پول می‌ذارن تو بوند حداقل میگن که اصل پولمون سر جاش هست اما اینا دارن کجیشون اینه ولی دارن zarar ولی ممکنه برم توی بیزینسی پول اصل پولشون هم بخورن کسایی که پول میذارن تو بوند از نظر اقتصادی zarar می‌کنن آدمای به ریسک قریزیان که پول تو بانک میذارن؟ بله. از نظر اقتصادی زرر میکنن. اون قضیه قدیمی هست دیگه. اصل پولشون، یعنی خیالشون راحت دیگه. اصل پولشون عددش سر جاشه. اصلاً ممکنه بیان یه بیزنس، یه شراکت، یه پیش فروش ساختمون یه چیزی بخرن. اصلش از بین بیم آقا سود اون کمه، زررن داره ولی خیالشون راحت زمان انتظار در سرگشو میده یه گذاری در پایان دوره منهای ارزش سرمانی گذاری در اول دوره تفصیمت ارزش سرمایه گذاری در اول دوره مثلا شما یه آپارتمان خریدی متری 4 میلیون به بخی سه میلیون بعد از یه سال فروختی متری 4 میلیون میشه بازده؟ حضرت ما هزیش سرمین در پایان دوره منفیه ارزش سرمین در اول دوره من در خب در پایان دوره چهار اول سال ما خریدیم متری بعد سر یه سال دو سه 4 چهار یه تومن اضافه شده یه تومن اصبت به ستمان که اول برویم باز واقعی ما چقدر سی سه دلار لار خریدی مثلا تو لار خریدی 10 دیویس 2000 پونسا خیلی آدی من چیزی حفظ کردنی نیست فرمولاس باد داریش راحت میتونید بازش بگی چون حساب کنید فقط یه نکته داره به نکته مهم همیشه نتخه بازده تو پراته. هم مورد انتظار و هم واقعی پراته بسته به صورت سالانه بیان می شود صورت سالانه بیان می شود به دلیل ایجاد قابلیت مقایسه به ایجاد قابلیت مقایسه و ارزیابی عمل کرد. خب مثلا یه چی؟ مثال من سهام شرکت آ رو خب در تاریخ یک مهر خریدم 1200 این خریدم و این صحام رو فروختم در تاریخ یک دی 1300 آخا شما ها نظر بدید من کارم خوب بودو یا با؟ شما خریدی تو مر هزار یک دی, دی یک یعنی سمان سمان. واقعی من رو حساب کنید و نظر بدید شروع کنید اینا فرمولهایی که تو ذهنتون باید ثبت بشه. ذهنتون چارچوب پیدا کنه. فرمول داره دیگه. مثلا بقیه که مثلا کار چی ما فقط نسبت چند ما رو بگیریم. ما با تبدیلش آه تبدیلش کنیم که این 40 درصده ما هم مقایسه کنم گفتن همیشه نکته این بود دیگه همیشه نرخواه به صورت سالانه قیانی شد برای اینکه بتونیم با هم مقایسه کنیم حساب کن دیگه خب خب نداره یا؟ چیه؟ عملیه باید خود با ماشینسا بخشتاندار مالی دیگه درست مالی بایی محساب دیگه که خود رب که کار درستی کرده یا همه پس صورتش اینه باز به واقعی رو معاسبه کنید اه. همچنین در خصوص عملکرد من نظرم عملکرد رو یعنی میشه یک چهار است شیم روز خب نه خوب نموده مقایسش می‌کنم با اون کفه که تو ذهنم هست ببین اینا همه <تصفح> خط دیگه خط کشی میشه ذهنی خب بجز این یه یه بخش مثلا مギー سان اون موقع دروردید بردی، دوباره مثلا تا آخر انسان اونم یه بخش حالا این مسئله فقط همینه دیگه اون مدارخیشو نگفتیم که نه خوب بخوام حساب بکنم سود انسان یا حساب بکنیم میره بالا دیگه درسه پس چه جوری حساب شد؟ همه نوشتن 1300 منهای 1200 تقسیم بر 1000 و 200 میشه یک تقسیم بر 12 میشه 8% درصد این 8% درصد رو من تو سه ما به دست بردم گفتم برای اینکه بتونیم مقایسه کنیم همیشه دازن رو باید سالانه بعد تبدیل کنیم 8% درصد تو سه ماه مسابیه 32% درصد تو یه ساله حالا میتونم سی و دو درصد با چه درصد که حد مقایسه کنم بس عمل کردم من خوب ام. نه 8 درصد تو سه ماه درصد تو تو اصلا من, درسد. درسد من اون که گفتید یعنی حاجا هر ماه میشه چند درصد؟ بعد چهار ماه 8 درصد. ما شده. سه شده, شده درصد. خب بعد ماه یک اون هر و... هر 12 ماه. معادله رو بسر. بسر. بسر. اونو نه معادله حساب کردن اینجا شدن. جمع سازی شده. چی میشه؟ یعنی سم. هزار و سی منهای هزار تحسین من و این میشه فقط این 8 در سه ماه. ما بعد تبدیلش کنیم میشه سی درصد در سال. حالا این سی و رو مقایسه کنیم با چل درست, درست که قبلا ساختیم و همین خاطر میگو عمل کردش خوب نه. نبوده حداقل دقیل چل باید دست میمورده ولی سی دو درست هم به دست فهمید نه فهمید؟ یه جوری میپرسم این نه فهمید هم بگید دیگه خب آره اون متوجه شد اون محصول متوجه نشد این؟ چجوری متوجه یه سوال دیگه بنویس. یه چند جلو. اولیه. پوزیت. هزار و 12 ماهانه چقدر باشه؟ این دیگه همت آسانه من گفتیم چند درصد تو یه سال؟ میخوام خوام ز توش نقش ببا. تقسیم برد؟ دوازده. دوازده میشه چقدر؟ سه و میشه سه و سه, سه و چهار داریم سه و چهار میشه یه سه و سه و سه, سه, و سه. خب، هم یعنی توی ماه ما کانی ما سه رو تو زندتون برجه دیشم؟ تو چقدر تو آزده چه, چه, ده؟ چه ده یه ماه چقدر؟ سه, ماه سه و سه, سه, و سه یعنی هر ماهی سه و سه سه دهم... حد دقیقه باحت حد باید بالای این باشیم اگه من میخوام درصد باشم باید حداقل در درصد هم خور کنم صد... هشت درصد هم هشت هش اگر صد درصد صد درصد بشه ماهی صد, صد, صد, صد, صد درصد بکنم خب میشه هشت باستان با همه اصلاس ترزیز بانک خصوصی همه 24%, 25% زیر این 3 و 3 درصد. بله بله تو بازار بخوای پول بگیری سدی سدی سک چهار پنج شیش داره ریسک بیشتری هم میپذیله دیگه همینطوری پول میده با یه چه آدم ریسپذیریه درصدی هم که میگیره بالاتره ولی بانک کلی تضمین و وسیله دو اینا میگیره درصد کمتری هم سود میگیره ریسکش باید خب حالا یه سوال دیگه یه مثال دیگه ما اومدیم مثلا یک شدی 91 دلار خریدیم 1550 تومان. الان شدی یا نامه دوست 2500 بازده ها. واقعی ما چقدره؟ اول کردمونو چطوری ارزیابی میکنیم؟ از یک شدی یا الی وس امی دوستان. تو سالیوناییم چرا پدر وس؟ امشن نرخ دادوسته درست؟ دوستالش میشه. نه میشه سادو هشت میشه نه مست. میشه سادو هشت هر گرد کنیم دو سالش من یک پیش در یک کرده سه گزه ها دویز پنجا این سال اساس کردیم دیگه همه رفتن فکر دنبال دنباله دولار آنیم میشه این در درصد ولی ۱۸ یا ۱۸ درصد ۱۸ درصد آن درصد یک و هشت دو... یک و, و, و هشت, و هشت دو سال تو <تصدق> حالا یک و هم میکنیم نه یا بازده همون چقدر؟ درصد سالی اول درصد این چطوره عمل کردش؟ موزید. موزید. موزید. موزید. موزید. دو باید ما دو, دو برابر نرخی که ما انتظار داشتیم توی ایران یه مفهوم مهمه دیگه ما این باید باید باید. دیگه این خب؟ تقسیم کسی میکنم با تو دو ساله, ساله ما سالی حساب کنیم <تصفيق> که با چهل سالا نمون مقایشه مثلا همین گفته همیشه سالانه. نمیشه نقل حالا تقسیم برای دعوز همت میشه جمه نمت خوبه تقریبا میشه آمانش هم کردیم هفتنیم حالیو آمان هم هم خب این هم هستیم رو و باید در بیاریم این فرموله احساب شد مثلا من اولی زدم هم و, و من فی ایزادیش کردم خب؟ بعد اون رو در بردم تحسیم هر ایزادیش کردی شد همین درست شد همین درسته درست شد من درسته اون هم، اون که گفتی هم نه، من دو سالش هم بعد تقسیمش کردن شد چیش؟ چیش یعنی شما همین حساب کردی؟ 93 در رو من؟ آره دیگه بعد دو سالش که این شد؟ رفیشون دو سال آره همین رو زدن؟ نه من تقسیم بعد آره تقسیم بعد خب تقسیم سه درصد در نمیان بس ما در واقع مثلا احتمالا دو احتمارات. تو مخلجی تو اشتگاه هم بجا یک و دیس فنجه سه خب نه، ما خواهیم این چیجری به این چریعت درسیم از اون بکنیم که همینی که یه فرمول دوشتن ارزش سرمیوزاری در پایان دوره میتونیم، ارزش سرمیوزاری در دوره حسین بر ارزش سرمیوزاری در حول دوره این فرمول، جاگذاری کردیم تمام بعدش نیوم کنیم نیش هم کاد رو خواهیم سودا رو میری از بانک میگیری آقا بهش به استوژیو برو آنطل یا خرید شده آن براید نیم براید هست اصلا این, این چه لرزه داریم یه نورمه یا اصل اصلا تو ایران نه کلاس تو ایران یک میشه که تورم 20 الان فعلا الان این میره الان 20 درصد گفتم کمتر شده می بیشتره الان شده ریسک بین علما اختلافه دیروز تا <تصفح> 16 <تصفح> درصد <تصفح> گفت <تصفح> <تصفح> میخوایم <تصفح> ریسک <تص کار کنی یه مدلی داریم اسم مدل جامعه چرا نمیونه؟ مدیریت بورو. اندازه جامعه. ریسک دو روغن. ریسک مالی، ریسک آیه. ریسک مالی مثل ریسک نرخ ارز. مثل ریسک نقدینگی مثل ریسک رو این طرف مثل ریسک مدیریت ریسک نیروی انسانی ریسک کشور که بهش ریسک سیاسی هم يد. اسکی 38 ریسکی اولیش مدیریت بعد اون می شما من بنویسین. کیت، آخری قانون اصلا بخوام تو کشور خارجی سرما گذار کنم میشه ریسک اعتباری، نه. میشه میشه؟ پریس کشور پریس که کشور میشه سممگذاری بخواد بکنم خب سممگذاری کنم توی کشور خواهدی کنی خودم ایران باشم تو کشور خواهدی سممگذاری کنم کلیه 20 که تون کشوری رو یعنی همین تحلیل رو با تو کشوری رو یکی از این هایی <تصفح> اونم میشه اونی در خب،, خب اونه همه چند میشه اینو ما باشیم <تصفيق> جامعه ریسک این مدل کمک میکنه به ما که این عددی رو که برای ریسک گذاشتم مثلا پیل در میشه رو با تحلیل و کار انتخاب یعنی و ریسکگاه خب رو بهشت هستم این که من توضیح بدم مثال بزنم شما میبینی که ایران چه کشنر پر برای سرم بگو همه اینا توش هست همشون هم به وفور <تصفيق> بود جده تهکش های دنیا بود مثل که این آمار اخیر داده بله خب اول که بگیم فرد این دوتا چیه؟ ریسکای مالی این میخوان یاد داشت بانیم ریسکه یعنی که مستقیم موجب ضرر میشه ریسکای های مالی ریسکای مالی، ریسکا یعنی که مستقیم موجب زرر میشه یعنی تا اتفاق می افتن مزرر کن ریسکایی هست این که مستقیم مالی زرر موجب زرر میشه ریسکای دیر مالی به طور دیر مستقیم موجب زرر میشه به طور دیره مستدیم در نصورت ریسک موجب ضرر میشه؟ به طور دیره ما همه موجه و هم. میتونه بشه ما همه در معرض ریسک هست هستیم هم که اینجا بشه یه سری ریسک داره و آدم ها ذاتاً از ریسک گریزانند یعنی دوست دارند که خودشون نسبت به ریسک بعد بد پوشش دارند مثلا شما به ماشینتون بیمه سرسی سالس میکنین یا بیمه بردنه میکنین یه مبلغی رو میدیم ولی دیگه راجع به خطرات احتمالی و آتی خودتون رو پوشش میدیم منطق ما ریسک رو بشناسیم و اینها رو مدیریت کنیم پس تو این بحث مدل جامعه ریسک دو تا نفتر رو میگیم یکی این که این ریسکه رو بشناسینش یکی هم این که توضیح میدیم چجوری این ریسکه رو مدیریت کنیم، تک تک این صحبت میکنیم خب، از ریسکه از ریسکه های مالی چیه؟ ریسکه، تنگیرات، نرخ، عرض, عرض. دیگه این درس دادنش خیلی خیلی راحتیه ایران که اینا همه هست ولی راحت. تو این کشور دیگه بخوای درس بدی، شاید مو باارشون نشه که مثلا عرض تعلیل کنه. می خب یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه خرید خارجی داری مثلا هزار دلار. تو تجهیزاتی رو خریدی خب از این خرید 25000 دلار رو امروز پولشو دادی؟ بیس و دلار رو باید 6 ماه دیگه که دستگاه رو میده بهش بدید امروز دلار و پونسده دیگه معلوم نیست معلوم نیست اگه بشه چهار بشه چار و نیم بشه سه و میان چی؟ این ریسکه این تغییره مستقیم موجب ضررت میشه Okay. باستان ببخشید از یه طرف هم اینقدر که کسی که مثلا 7000 تون دلار بخره از یک سری عرمای استفاده بکنه باید می کنم بعضی هم نبیتونم بکشن هست که رقابتی هست مثلا این تجهیزات کامپیوتری طرف سفارش میگیره. گیره یه شرکتی وارد میکنه. کنه در به ریاله قیمت وقتی هست بعد که میره این رو بسر دولار میره والا اون وقتا تغییرات نرخ ارز وقتی ارز میره بالا وارد کننده متضرر میشه. اگه طرف صادر کننده باشه منفعتش میشه. به نفرش میشه. وقتی نرخ ارز بیاد پایین، بازی برعکس میشه. وارد کننده به نفعش میشه، سادر کننده میکنه. حالا پس این افزایش نرخ ارز میتونه برای اونهایی که وارد کننده اصلا سوداوری پروژه از بین ببره یا سودشون رو کم کنه یا حتی زرگه باید این جای پهکان بیا یعنی قرار بود که یه ماشینه مثلا پیکان هست بشه پنششتون هم بود اون بیاد جایی الان اله چنده؟ چه میلیون چل آره اون مدل ساده که کرده یه دونه ایروک داره و ای نداره نیشن و 35 تان یکی از دلایلی که این پروژه اینطوری شده موقع یورو بوده 700 تامن <تصفح> که پیتان بوده 5-6 الان یورو چهار چهار هزار رو خوده باره پروشون میگیره از مردم خب، حالا یه موقع نمیتونه پولشو بگیره الان ایران خود رو انحصاری هر تنو باشه بوله مردم میگیره، مردم هاش دو صرف هم بایستفنگی ولی یه موقع از شما قیمتت میره بالا، قیمت رقیمات بالا نمیره بازار را از دست من میخوام مثالی بزنم که نرخ عرض چجوری رقیمتها رو تحریر میده حالا راه مدیریتش چیه راه مدیریتش ایجاد دارایی، ارزی معادل بدهی ارزی، ایجاد دارایی، عرضی معادل بدهی, عرضی. عرضی معادل بدهی عرض. یعنی چی؟ یعنی که ما الان 25 هزار دلار بدهی داریم برای 6 تا دیگه و بدهیمون ارضیه همین امروز بریم این رو تهیه کنیم و تو بانک سپر بکنیم حالا بعدا این بره بالا یا بیاد پایین ما همون مبلغو آماده داریم ولی مشکلش اینه که ما اگه این پولو داشتیم شاید اصلا نقد این تجهیزاتو نخریم ممکنه که این پول رو نداشت باشید این راه حل در دسترسی برای همه نیست نیست با... راه حل دیگهش قرارداد آتیه بس برشن بس بس برشن. خب اون که مثلا میخوام شیشمان دیگه بده, بده کاری داریم خب اه... علی بخواهم پرداد کنیم اون با پول روز و کش و روز میخواد یه صاف کنی دیگه درسته نبا اون زمان که قرارداد آتی اصلا می‌پیشه 5,000 دلار ما هم بهده من yeah, پاری ندارم اون کشور دلار رفته بالا اگه بره بالا ما, ما آسیب می‌بینیم دیگه خب قرارداد آتی چی آت. قرارداد آتی خب این هسته کوچیکه داخل پرانتز انواع قرارداد رو بدونیم چیه بعد آتی رو توضیح بدیم نقدی نسیه پیش فروش آتی نقدی نسیه پیش فروش آتی خب از یه منظر قرار دادا اینجوری تواقع این حاله؟ آم توبومیه چیه؟ بی حال. حاله؟ توبومی هم این زمان دریافت کالاخت، اینم زمان پرداخت بچه از زیر این زمان دریافت کالاخت کالاخت از نظر خریدار می روشتن از نظر داره فروشنده اون پیرو برک، برکن که قربازون یه قرداد نقلیه من میرم پولو میدم جنس هم موقع میگیرم هر دوش در زمان حاله میشه چی؟ قرارداد نقلیه اقا پولو بگیریم یه ماه قرداد نسریه هست جنس رو در یافت میکنی؟ پولو من جنس رو میگیرم پولو بعدا میدم میشه چی؟ نفلیه. یه ماه قرداد پیش فروشه من پولو الان میدم. به نظر خریدار ولی کالا رو در آینده می‌بینیم. این میشه چی؟ بروش قراردادات آتی یعنی امروز قرارداد میبندیم این شکلش حتماً داره زیاد میشه. شما قبالی ندارید. ولی جدیداً داره رو سکه طلا هست. بورس سکه آتی داریم دیگه آره، بورس کالا اینه. آتی یعنی که ما امروز قرارداد میبندیم که سه ماه دیگه یک کالایی رو معامله کنیم. همون سه ماه دیگه هم کالای رد و میشه. هم پول شد وارد ولی قیمت رو از امروز مشخص میکنیم پس قرارداد آتی ارز اینطوریه من با یه شرکتی یا با بانک مرکزی الان فعلا تو ایران نداره فعلا تو ایران ابزارش نیومده دارن کار می‌کنن من با بانک مرکزی قرارداد می‌بندم هزار دلار میخوام برای اول اردیبهشت قیمتش هم مثلا میگه 3 و 600 قرارداد رو می‌بندم تموم شد اول اردی بهش من پورو بهش میدم اونم به من 25000 دلار میده اگه دلار شده اون 4000 تون من همون 3600 هم بسیار ابزار شد یه کارمز داره بفتین ابزار شد. شد این انجام نمیشه ساز و کارش نیست واسه همینه که شرکت های ایرانی عوضی که عرض میره با همه در حال زرگ کردن حالا اونایی که قیمت رو میبرن مردم هنوز میخرند نه. ولی اونایی که یه قراردادایی دو رو بستن یه جنسی رو میارن دولار پیمین رو بلا زرن یعنی در حقیقاً نمیتونن خودشون رو پوشش شدن خب این از اولی بیام حالا سه بامی چهاروی رو بگم باید بیام دو بام سه بامی ریسک مردی میدونی تورم. تورم. تورم. تورم تورم یعنی چی؟ تورم یعنی هفتایش قیمت ها تورم یعنی قیمت یعنی کاهش قدرت خرید یعنی شما پولایی که دارید قدرت خریدش در طول زمان هی کمتر میشه بس تو ایران اینا درس بودن اشتاد هستن بسه باقید توی سویس درست بتیم یعنی همون یعنی چی قیمت میره مالا؟ تا الان ندیدن تقریمانشون منفیه، این قیمت را پایین ترم بیاره منفیه منفی دو درمه درسته خب چجوه زندگی میکنم؟ بدون تقریم چه کچه خواهی زندگی؟ نه نیمیشه ما عادت نداریم سال به سال تجربه شون صاحبه کارشون میری و بیشتر میشه ولی همه چی قیمت هاش صابت هم بوده یا یه جوزی چند تا یه نقطه میگه که در زمان تورم بزرگترین گناه نگهداری وچه نبود در زمان تورم بزرگترین اشتباه نگهداری وچه نبود چرا؟ چون دوره عرضشش کنم داره کم میشه چجوری مدیریتش کنیم این ریسک رو راه مدیریتش چیه؟ راه مدیریت ریسک تبرمه پولهای خود را به داراییهای های موجب تورم پولهای خود را به داراییهای موجب تورم تبدیل کنید این کدومه؟ راه مدیریت ریسک طبعی داره اینا موجب تبرام چیه یعنی همون چیزایی که داره جلو میشه تبدیل گونه رو باید بزنی تغییر گونهای موجب لرزش پولاد از زمین نره مثلا داره زنین گрун میشه خونه گрун میشه مثلا داره دوار گрун میشه مثلا داره بعضی ریسکش پذیرشش بالا سن روغن داره گрун میشه میرن یک کوه روغن می‌خفن پولای خودشون رو به اون چیزای تندیل میکنن که داره گرون میشه اینطوری خودشون رو نسبت به ریسک تورم پوشش میدن که این نیاز به شمع اقتصادی هم بزرق باید تورم بیشتر میشه بازه به هر تحکی تصمیم میگیره دیگه هرکی تحکی دنبال منفعت خودشون زمانی نه با پول نگذاری آقا اوکی داره مثلا چیزی که داره گرون میشه موجب تورم بررسی کن تو هر زمانی چیا بود دارن باعث اگه پولمو نرسی چی تو زمان و موجب اون داره گرون میشه بلکه الان رکود طلا رو چی کار لازم باگویند که شرعیه تو رکود پولاشه وقتی قیمت داریم میاریم وقتی دیماتور نیت کنیم شما باید پول داراییات رو به پول تبدیل کنی در طول زمان تو پیش مدت بیشتر کنی اگر که داره پیش بینی تینه که میاد کنید، واسه پیش اصن تو وقتی آمی... می دیدیم مثلا بعضیا گرونی خونه را فروختن وقتی ارزشش میتونن دو تا شده باشه 200 تا بود تا 200 تا امریکا که ارزش پولش به شدت افت میکرد تو اون بحران افتاد اصن دولت امریکا رسما هی اطلاعيه مردم میداد که از خرید کالاهای غیر ضروری خودداری بکنید و پولتون رو نگه دارید اصن آموزش عمومی تو امضا بود برای تو ایران همینا کردن تکرار میکردن اونا تو دوره دو تورم, تورم بیشتر بود. تورم بیشتر اونا. گفتن خرید نکنیم مردم وقتی به دلار اعتماد ندارن دیگه مثلا طرف میمد پشت تلویزیون و عزیز بود رئیس گفت آقا دلار دو فردوسویش میز دیگه 200 من دیگه رفت بالا. <تصف> دوباره شهر دو نمیواد بابا. همین اینا که رفته بالاست من ضرر میكردم. مردم خیانت رو بعد می اومد دوباره ببینید مثلا سکه دوره رفت بالا. اعتماد نه دولت هم قدرت کنترل وقتا ریسک بعدی ریسک اعتباریه وقتی که شرکت فروش نسیه داره ریسک اعتباری یعنی چی؟ یعنی شما نسیه بفروشی پولت وصول نشه آن را شما این ریسک نداری اه... ندارید؟ شما خب ریسک اعتباری تو کارت نداری چرا چریش چون می زنی پس یامیشوشه پانا اون تو ل کانادا است چون میدن چون تولید, تولید, تولید, تولید, تولید. تولید میکنه به خریدار می ده پس زمانی همین الان همی شروع میشه نه داره داره چند وقت ماه سه ماه برژی یک چرا قضی‌های که از الان اون سفاره مثلا چه پنیزاتا تا نوروزشون خب؟ مثلا یه پیچ فردا پاهم می‌دن برای شکل می‌نم از شما که اصلا الان درات تحبیل چون ریسک و ت چون یه وقتش رو پیش میگیم کمتره اگر فروش های نصیت وصول نشه بهش میگن چی؟ ریسک؟ ارتوار ارتوار تو ایران فوران ای... میزنه یعنی شرکت ها اکثراً در این فروش های هستن که نمیتونن وصول کارن نفساد ایمانکاریان اونهایی که با سازمانه دولتی کار دارن باستان پروش راه مدیریتش راهم سر پروژه ریسه اعتباری سی گفتیم من اون رو ننویسم. کو راه مدیریتش. آشا. مثلا شرکت که فروش ریسه دارن و نمیتونن وصول کنن با این ریس مشکل دارم مواجهه. راه مدیریتش اینه که یک واحد اعتبار سنجی داشته باشه. همچی یعنی با هر کس و هر شرکتی کار نکنید. حالا واحد اعتماد سنجی میتونه مثلا تو یه بانک یه واحدی باشه با 50 تا کارمند چون بانک هم همیشه این ریسکو داره. وام بده، نتونه قسطشو وصول کنه. درگیره کاغذ درگیرین. ضامن میگیرن، سوابق اعتباری فردو براتون میکن. چک میکنن تو سیستم بانک مرکزی که چک برگشتی داره یا نه. توی شرکت کوچید میتونه زنگ مدیر فروش باشه. آقا به فلانی تا هنگ بدین. به اونجی اصلا اصلاً نسیه دلید. ندی. ما خودمون همینجوری هستیم. به فلانی هر چقدر خاص بدین. این میشه چی؟ یعنی نباید بدون برنامه شرکت همینطوری نسیه و ولی اصول و داشته باش. ریسک بعدی که خیلی مهمه من میخوام روش بحث کنم. ریسک نقمی نگیری یکی خسته نشدیم؟ نه نه ریسک نقمی نگیری یعنی چی؟ یعنی شما پول کم دارید کنم بودا که این مغازل دولتی مست کشوری مست مز... <تصفيق> <سوى> کش ریسک نقمی نگیری خب برای اینو توضیح بدم یه سوال ازتون می‌پرسم. پول مهمتره یا سود؟ محبlad. پول مهمده. باید چون پول پوله باید پول داره داره داره <تصفيق> باید پول بعد باشه که سود بیاد البته پول نباشه سودی در کار نیست پول مهم‌تر یا یاس پول سانجو سانجو نداشته اعتبار را... خب ببینیم داستان چیه فرض کنیم که شما خرید و مثلا مثلا مغل انجامیم مغلو می 5 ملیون قابط هر یه دونش 2 ملیون 2 سود داریم خب این در حقیقت همون صورت چیه؟ سود و زیان. زیان حالا ما می خواهیم می نقدیش چطوریه؟ وقتی میفروشی میخوریم سه میلیون سه میلیون رو مثلاً نقد می دیم. از نگاه خریدش شما داریم یه جوری نگاه خریدار دل می دیم. خیلی دل. کارم خرید فروش موبایل. فروشکار داریدی؟ کارم خرید و فروش مبله از نگاه یه فروشندگی. اولی من، تولید می کنم موبایل، نه ولی من می فروشم. این نه. نه خود طوریش بازه تو بوشی اون مرازه بازه مو... مو... مو... تو بوشی مرازه بوشی میخری و میفوشی آره میخری سه ملیون تو مردم میفوشی پنج بوشی هر یه دونهش دو ملیون سود داره هرچی هم بیشتر بفوشی خوشحالتری اشکاله کاشنگ داره <تصح> <تصح> حالا فرض کنیم وقتی میخرید سه میلیون باید کل پولشو نقدی بدید وقتی میفروشید 5 میلیون دو میلیونشو نقد میگیرین سه میلیونشو مثلا دو ماه بعد میگیرین درسته چقدر پول دادین 3 میلیون چقدر پول گرفتین پس یه میلیون چی دارین کسری وچه نقض داریم هرچی بیشتر این معامل رو انجام بدین به ورش کستگی نزدیکتر میشه سود یه مفهومی که خیلی مهمه ما داشته باشین از اون مهمتر پوله و تو شانسی درست گفتی شانسی جان کار درست تو درست گفت پول سود مهمتره چون چرخ شرکت با پول می‌چرخه نه با سود سود دوستان یه مفهوم ذهنیه یعنی وجود فیزیکی نداره مثلا من موبایل رو خریدم 3 میلیون تا با فاکتور سه میلیون تا با فاکتور سودامی میشه تو یه نفر بیاد تو شرکت بگه سودکو چه کار تو دنیای واقعی همتایی نداره ولی پول یه مفهوم پول یه مفهوم عینی واقعیه شما نمی‌خواید که کارگرات بگیم ما سود داریم ولی حقوقتون رو نمیتونن الان بدم نه آجرای کارخونه در میاره. چرخ بیزینس با پول میشه. چه بهتر که هم سودمون مثبت باشه هم بول. پولمون مثبت باشه یعنی پولهایی که می‌گیریم بیشتر باشه از پولهایی که می‌گیریم توی مثاله این مثاله ولی اینطوری نبود پولی که گرفتیم دو میلیون بود ولی پولی که دادیم سه ام. و اگر توی یه روز ده باری معامله رو انجام بدیم ده تا یه میلیون چی داریم؟ کسی داریم، این پولی کم داریم بعد مجبور میشه، این بره وام بگیره بعد این وام بهره هم داره این بحره باعث میشه که اصلا سودش هم که دوم نجونم حضینه هست دیگه سودم از بین میبره پس تو هر بیزینسی دوستان کشفلو حرف اولو میزنه چی میشه کشفلو تو بگو جریان نقدینهی یعنی ورود و خروج ما باید یاد بگیریم وقتی مدیرت مالی میکنون خیلی ها حسی بلدن نداره هم که دریافتامونو سری بگیریم ارچه سریتر تر پرداختامونو دیر بدیم به شرطی که اعتبارمون خراب نشه ها تا حد ممکن پرداختا دیر دریافت سریع هر تا شده با تخفیف با خلاقیت هر طور شده پول ها رو زودتر یه درصدش رو کم کن اگه نرم میدی دو درصدش رو فلا کن این رو بگه خلاقیت و مزاکره و چونه زنیه سودی ها جایی میگید بنامی سیانش؟ یا معاملی مثاله؟ همین مثاله خوبه دیگه مثال ها... عددی چی بهتر این ما برای که جوران میکنن مثلا مایه بایه ها میدن میگن مثلا نقضیلگی بیاد دوست پول، اره پول هست اما سر این مثلا خیلی آف زدن جنسای خوب هم دارن آف بیزنن بلی خب به خاطر چی؟ به خاطر این آور ورسیه؟ چه که شایی های قیمت؟ من این میذارم سود، این رو میذارم خود هم رو که؟ من سود رفتی به پور نداره ممکنه؟ شما سود داشته باشی؟ اگه هر دوتاش نقدی باشه چی؟ دوستان یعنی هم اگه هر دوتاش نقدی باشه باید بهتر از اون چیه؟ خب مویلیا این رو چیه؟ خریش پس میتونی یه ماتریس درست کنن؟ خب؟ سود کم ور کم بیاد. بهترین سلولش اونیه که هم سودش بالاست هم پولش بالا okay. و بدترین بدترینش اونی که هم سود نداره هم پولش هم پول نداره دیگه اون دیگه از همه بعد حالا بین این دوتا کدوم بهتره یعنی کدوم بذارم B کدوم بذارم C که رو کردیم ها اینو بذاریم B اینه که پول داره ولی سود نداره B اینه که سود داره ولی پول نداره C یعنی به ترتیب من بذاشتم این چیز خودم در رویس نداره مقایسه سود رواجم اینه حالت های مخلطش پس یه بار دیگه این سوال رو میکنم سود مهم تره یا پول؟ پول پول مهم مهمه ها؟ باید پول باشه که سود بیاد پول از اون مارد. <تصفح> <تصفح> پول از سود مهم تره کارمندی مثلا سه ما رفته سر پایش باید هی بزن بچه چون که من سه دارم چهار طلب چرخ زندگی با اون طلب ها بعد نمیچن باید مجموع کار کنه برس کنه گام میفته توی یه ما معیوب حالا ریستوران ها تاکسی ها تاکسی خوبه با؟ آراشگاه؟ آراشگاه خوبه, آرشگاه. آرشگاه. آرشگاه. خوبه, خوبه. یه جنبه داره که پولشو هر شب, شب جیبش میذاره می رستوران دیگه از آنهش بیهتره رستوران، مرگ و گوشت و ایناشو همه رو چکی میخره بید. ولی فروشش نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه کار خدمه، بعضی نعدادی همیشو نه نقده اصلا نقد <تصفيق> کلن و نقد میخورده نقد میپوشه بهترین حالتش هم داره خیلی یادی وقتی نقدش بشه باشی به یکی نقد نقدسو بخری شما نقد میگیری بهترین حالت هم هست نه حالا ما گفتیم خریدهاشون هم چک چکم میدن بهترین حالت اینی که نصیه بخرید نه بخرید نه نقد بخرید زیر قیمت بخرید چه بهتره دیگه آمدار دانشتا. آمدار. دانشتا. آمدار. من اصلا نمی‌خوام. من پول ما همیشه مثال دانشگاهه که خودم توش هستم دانشگاه آزادم میگم. دانشگاه آزاد شهریه رو کی میگیره؟ دو هفته قبل از اینکه ترم شروع ما مثلا 15 15 میلیارد میاد تو حسابم. مثلا 5 بهمن ما ثبت شروع میشه. تو اون یه هفته بالای ده میلیارد پول میاد تو حساب یعنی فروشامونو پولش پولشو جلو ایه. ایه. ایه. حقوق کارمندا رو کی میدین؟ یه ماه به ماه حقوق استادا رو کی میدین؟ ماه به ماه استادایی که هیئت علمی نیستن و مدعوون آخر ترم که رو گرفتن نمره رو دادن مثلا میشه مرداد سال واسه همینه، شما میبینید از دانشگاه آزاد سی و تا واحد داره مثلا از تهران بری شمال دانشگاه آزاد پردیس بومه هند، روده دماوند دماون، فیروسکو، سوادکو یعنی هر 20 کیلومتری که میری یه تابلو زده به شهر شهری چی چی؟ خوش آمدین؟ یه تابلوی بعدش؟ دانشگاه آزاده؟ بایده بیده. بایده فلا. این قدرت رو هر کدومشون هم میریم بعد سما میبینید یه ساختمانه دیگه اومد بالا این قدرت رشد و توسعه رو چی بهش میده؟ کشف کشفلو كشف. قدرت پوله که اینطوری رشد میکنه یه ساز پولا رو زور میگیره همیشه کلی پول اضافی داره بعد میذاره تو ساخت رو ساختهی آزمایشگاه ساختونه ج کلاس یک دانشجوی بیشتر رشته بیشتر حالا کارشناسی بوده حالا ارشد حالا ارشد دو دکترا همهش همینطوری بزرگ میشه یه بیابون یه قون میکنه آاد میکنه اتما می پووشه اینجوری اصلا, اصلاً سیاست جسی اینجوری بزرگ قدیم بیابیون رو میخرید مفت و دانشگاه آاد که تاسیس میشهد دو دوربرش. خونه باید یفعی قیمت ارزش باید زمین هاشون دارش کنم زنه قیمت پیدا میکنه زمین هاشون میاد، آب میاد، اشتغال میاد آواد میشه پس این شد چی؟ ریسک نهدیندگی باید حواستمون باشه فروش سری سریع کنیم و به تا حد ممکن با تأخیر. به شرطی که اعتبار مقرار نشه همون بابای دار و بابای نادار اون بابایی که استاد دانشکده بدهیا شو اولین روز میداده مثل قابض تلفن خونه چی چی؟ اول ماه پردا. اول کرد. اون بابایی که کاسه بوده آخرین روزی که میشود پرداخت کرده. این نقطه خیلی لکشی که؟ این کار میکنم اول پرداخت چیزشونو. کی خیره؟ رو چند روز پیش این سابنسی ما گفتش حقا یه مثلا هجارت و نصفش و در من پول پیش بوده اما ما این حساب دارم یه مشابهری که دارم چیجوری میشه او میشه در موقعی که چیش شما یه پول خوابی داشته باشی همین داری کارمون شما برزبه داشتون پول داره باستا من کار میکنه نیگه بیایم این طرف بیایم این باید ریسک عملی بود مدیریت این بدترین ریسک اینه چرا؟ چون مدیریت باید آگاه باشه و دانش داشته باشه و ریسک رو حل کنه وای به روزی که نشو. مدیریت خودش ریسک باشه نشو. یعنی چی؟ نشو. یعنی آدم میکاره؟ نشو. نیست درسشو نخونده تا اثساسشون نداره تجربهشون نداره که ما مشکل بزرگ کشور ما اینه طرف ببینیم مثلا از سردار ماده شده مدیرامل فوتبال. اون یکی می‌بینیم مثلا قاضیه رفته شده مدیرامل تامین اجتماعی ترمین اجتماعی بزرگترین سازمان سرمایه‌گذاری کشوره یه تعمال پولای کبی ما هم میدن مثل شرکت های بورس ما رو بزرگتن شرکت ها باید ترمیل بابا بعد رئیس یه قاضی میذارم آنه، واسپورس بود اکتر بعدم میرم همون چیز پول درست تر بیارم میشینم ادوستون میکنم ادوستون سیاسی میکنم دیگه اصلا خیلی خوب داره پس باید مدیرا دانش رو تخصص داشت راهش آموزش ببینن مثل شما که الان از دانش و تجربه مدیرها مرتبط با کسب و کار باش یا شرکت هایی که هیت مدیره دارن شرکت سهامی. صحامی حیط مدیره هاشون ناهمگون باشه یعنی یعنی مثلا اگه یه شرکت تصفیص شده 5 یاد مروب داره پنجتاشون مهندس عمران نه باشن چرا این بده؟ چون که همشون یه جور فکر میکنن یکیشون مالی باشه یکیشون حقوقی باشه رشتش یکیشون ام بیایی باشه ناهنگون یعنی همه آدم های سطح بالا یه شرکت یه مدل فکر نه کنه این ریسکو میارو پای خطر میار پای تا پس یه راهش چیه؟ حیات مدیره نام هم یه راهش دانش و تجربه مرتبط مدیران یه راهش حسابرسی داخلی سابرسی داخلی یه واحدیه که تو شرکت میاد عمل کرده مدیرا رو ارزیابی میکنه شرکت های بزرگ اونایی که تو بورسن ارزام دارن که اینو داشته باشن این شرکت خصوصی اینا یه خودشون تصمیم میگیرن خودشون رو اجرامی کنن زیاد به اینا وفاداری نداره و یکی نقطه مهم رئیس هیات مدیر است که از نظر شخصیتی آدم مدیر باشه پدر اصلا پدر شرکت دیگه رئیسه هم. و یکی دیگرش مدیر آمل و رئیس هیئت مدیره اینا جدا باشن یه نفر نباشه آن باید جدا باشه چرا؟ چون مدیر آمل آمل اجراعیه. خیلیت مدیر عامل تصمیم گیرنده است این این شرکت های صحامی یه سری آدم دارن به اسم چی؟ اسم دارون اینا میان با تقجیب تعداد که دارن چی انتخاب میکنن یه اینا یا یکی از خودشون یا یه نفر از بیرون رو بیانن به اسم؟ و این برای خودش مدیرهای مثلا مالی، تولید، بازرگانی می این, این رو خودش استفاده می کنه با کار کارکن خب در حیقت مدیرعامل باید به کی پاسخو باشه <تصفيق> و این هیات مدیره رئیسش یعنی دیگه بالاترین مقامیه که این باید اون رو خوب باشه متاسفانه ما خیلی می تو شرکتات طرف کار دی دیت رو میره حال یه شرکت خصوصی نوشته آقای فلانی ریئیس <تصفيق> مدیرعامل <تصفيق> و رئیس یعنی همون یعنی هم اینجا خودش تصمیم میگیره هم خودش اجرا میکنه یعنی دیگه تجمع قدرت شده دسته یه نفر تا شرکت های سهام خاص که مجمع دارن چه خبره اینا میشن مجمع می دارن سهام ها پایینی حالا اگه شما دارم شرکت ها شرکت‌ها تو دو یا چند نفر مثلا پسر و پسرامو و دختراشو چند تا شرکت بودن یه شرکت چکار کردن با اونجورا تو سند آب اینجوریه مثلا چند شرکت‌ها ورزیدم مستاهین هم دارن یا هستن دیگه چکار کردن ایجاد کردن آره یه مجمع دارن یه مجمع بعد پایینش هیئت مدیره دارن که معمولاً هیئت مدیره رئیس مدیره و مدیر عامل نفره. نه اشتباه از لحاظ سیستماتیک در نظر حالا کم کم دیگه داره سفت و سخت میشه من, من جدید. آه جدید آه. مشکل م... ما 20 سال می همین خب حالا اون تجارت سال 40 که تو مجلس داره تصویب میشه یعنی آخر مدیریت‌هاای سر کار نمیره که یا مثلا بخواد چرا ممکن که موظف باشه من همین میخوام بگم شاید مثلا, مثلا, مثلا این کار... بگیر نباشه یک یک تشریفاتی باشه که مثلا گاهی یا تو شرکت تضم ببینید چه راه اون گیرانند یعنی موظف نباشه همون دیگه یه سری موظفن یه سری غیر موبازه یعنی چی؟ این یعنی تو شرکت حضور، دائمی حضور داره تو؟ غیر موبازه هم یعنی نه. اصلا استخدام این شرکت نیست هفته ای سه ساعت جلسات و جلسات حیره مدیره میاد یعنی تو منافع و این گروه بازی ها و آدم بازی های اینا قاطیز نیست یه شخصیت مجزای داره حقوق ساعتی میگیره، هفته دو روز میاد. و در درگیر مسائل داخلی شرکت نیست از بیرون هم شرکت رو می‌بینه. خود این غیر موظفه ها باعث میشن که این ریسک مدیریت کاهش پیدا کنه چطور؟ برای که منافع ندارن دیگه استخدام شرکت نیستن، حقوق گیر شرکت نیستن، داهم تو شرکت نیستن به اینکه این درست اینا انتخاب شد الان ما دیدیم که شرکت ها هم غیر موباز هم اینا تعیین این قیاد مدیره یا خودش اینا رو تنکیم کنه کی باشند اینا رو باید سهامداران جز تعیین کنند ما رو مدیره دو. غیر موباز زفار یه نکته مهم اینه که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یه نفر نباشه این هیات مدیره تصمیم میگیره مثلا میگه آگه ماشینال جدید تصمیم تصمیمو این میگیره این میره چی کار میکنه میره اصلا چین و ایتالیا فلان سه تا بررسی میکنه کدوم بهتر میاره نصب میکنه اجرا و اینه ولی اگه هم تصمیم هم اجرا و یه نفر باشه این دیگه میشه قبضه قدرت این باز چی این ریسک زیاده دیگه میتونه همه کار باقید همه کار باقید هم تصمیم با. با. به خودش میگیره هم خودش اجرام با. باید به هیچ که هم پاسخگو نیست مدیران باید به هیئت مدیره پاسخگو باشه وقتی خودت صاحبه همه چیز هستی تو اون سیستمی اون شرکت هستید. خصوصی اینطوری بله سامدارم سامدارم اها اوکی خصوصی که خودت تصمیم کنم اجرام باید سودا سودای جمعاید با خودته اجرام با خودته زراره هم مسئولیتش با خودته سماندار دیگه هم نداری، شریک هم نداری ریسک بعدی چی بود؟ میروی اصلا آه هم که خودش شکل هر سه بودیه اصلا خودش همه چیش داریم گزراندین اینا چیز داریم؟ نمنابه؟ چرا تو گزراندین برهنم تو این خیلی کار سخت نیره <متصف> خودش <متصف> که چجوری نیروه رو نیره داری و چجوری پاداش بدی و چجوری انگیزه بدی اون نیروه های های رو اونها چی رو کنترل کنی و آدم های خیلی کار سخته. تو ایران هم خیلی سخته اصلا شما یه با مدیر باشید تو ژاپن، آدمایی که همه همه چشم کار میکنن یا تو چین اصلا کارگرایی که تو چینن تو دنیا نداره ندارم. تا روز 24 ساعت کار میکنه، نمیذاره بزنه. 24 نان استاپ. عجگرگری دیدی تو اینا؟ یا با موبایلش بازی میکنه، <تصفح> یا وایبرش برمیره، <تصفح> <تصفح> <تصفح> یا دنبال مرخصیه، یا تادی تو نیستی کار یه دلیله که همه کشورا رفتن تو چین، تولیدشون بردن تو چین، دلیل اینکه کارگراشون اینطوری کار میکنن، از حقوقشون تو همه ماه هیچه هم دلار سن دولاره، همه دنیا رفتن چوبه زدن تو چین دیگه دیگه مثلا دستگاه گوشه ولی, ولی تو چین تولید میشه تحت لیتان ساله ولی تو چین تولید میشه خودرو ها تو چین تولید میشه همه چی تو چین تولید آه. ولی که کارگر آه. چینی آه. اصلا یه نفس زیادی نمیکشه یعنی فقط کار میکنه این برور نگاه نمیکنه من نزدیک دیدم هم یادنه باید بیانیم مدیریت کنن ولی ای ایرانی ها من این کار میکنن هرشکی این تو ایران مدیریت من انسانی خیلی کاره پیچیده تریه تو ای ایران الان تو این چیزت خانمه ها خیلی بهتر هست ما خودمون وقتی میخوایم حسابدار استخدام کنیم تو شرکتی هستم. به من میگن آقا شما بیا مصاحبه کنو استخدام <تصفيق> بهترین... از نظر حسابدار را بهترین گزینه آقای متهل دارای دو یا چند فرزند؟ چرا؟ <تصفيق> بعد خانومه مجرد بعدش بعد. بنام وفاداری خوب کار میکنه تو حساب منظم هم بعدش خانومه متعهله زیاد خوب نیست اگه بچه داشته باشه که بدتر میشه هی یادا وردیسه بیارم ببرم از همه بدتر آخوی این به هیچ چیزی وفاداری <تصفيق> نداره یعنی شما روی سرمایه که آموزش بدی ترفند تو بخور. یه جا پیدا کنه پنجه تا بیشتر ویل کرده رفته ولی این جننت این ریسکا رو نداره مردم شما خیلی نامردی مسائل غیر آدمار رو باید. وقتی گزینه‌ای مختلفی داری منطقا اونوی انتخاب میکنی که از همه بهتر این اصلا تو برای حسابداری از همه برهتر آخه مجرد؟ از گزینه شما، از دید شما بله واقعا نمیشه یاد من دارم و این از همه برهتره دو تا وچه، سه تا وچه داشته باشه دیگه تا درش هم باید بس. حالا شما هر از خود کنه اصلا استخدام نمیکنه چون شما دو تو مثلا ای بیشتر بیگه داشته باشین رو بزن اینجای اونا علی باز اولیویت شما پک کنه می اون مجرده اون سرکار رو داره اون کنه یه فن اول مدیران دارن، خیلی زاهر بود اصلا. آ ما من اول اگه مثلا حسابداری اینو شرکت آگهی داده 20 نفر فر رزومه فرستادم. یه روز منو زنگ زدن آقا مثلا 10 صبح تا یکی بعد ظهر اینا قرار رو بیان شما بیا مصاحبه کن. یا می‌گم این من میرم مثلا چیزی توش نیست. اینو انتخاب می‌کنن. یا می‌بینن مثلا این هست انقدر خوبه و تجربه داره که از اینا بهتر این, این تجربه کرده. باید یه طبقه بندی کلی کردم چیزای دیگه هم مهمه یه طبقه کلی کردم استثمان بعد باید باید بدونیم مثلا داری. تو کار می شیرونی فروشی من یکی چون یک از دوستان شیر فروشی دارن چند سال ما درگیر کار اینو ریسک این, این هستیم این مثلا تو کار شما اون ماهره کمه و نمیمونه و همیشه اینا خودشون سر کار و مثلا چهار تا برادرن حالا شانسی که پدر داره اینا چهار تا پسر داره که همه تو کار هن یعنی کارگر را قرار میکنن، برمیکنن، میرن، شبهه ای دو فلا اینا، اینا خودشون آره، واسه همینه اصلا یه رمز موفقیتشه ولی دائما درگیر این هستن هرچه ما میگیم یه سیستم پیاده کنی،, رو تو کنی. یه هر رو دار. اگه چرت سوندگی یه پدرشیمون نمیتونه اینو میگرده. اگه چرت سوندگی باشه یه آبشاری شوم است. اما یه پالو شو. خدا شو. ریسک مثلا تحریم، جنگ، نمیدونم دهباه سیاسی، فساد این همه موجب ریسک کشور پیشه راه حلی هم نداره بچه ها شما نمیتونید ریسک کلانه کشور رو تحریم همیدونید راه حلیش اینکه کشتر تا عرص کنید اگه تو یکی معاجرت راه حل اگه توی کشوری هستی که ریسکش بگیدی با خطر جنگ و ما تو سوریه هستی یا ایران رو یه ذر از اولا بتره یه ذر راه حالش که مهاجرت کنی مهاجرت کنی، برید توی کشوری ریسک بعدی برید جایی که احمد نجاداش کم باشن ریسک سنهت ریسک سنهت یعنی چی؟ یه مودش رو هسته سنهت یعنی توی سنهتی یه اتفاقی میفته که ممکن شما ضرر کنید مثلا مثلا تو صنعت خودرو بگن آقا عوارض اون خودروهای خارجی هست دیگه. یعنی مثلا توییت ها به قینات علاوه مثلا یه, یه توی صنعتی یه اتفاقی میفته که اون صنعت یا مثلا قانون هدفمندی دارانه ها تو صنایعی که انرژی برن مصرف انرژیشون بالاست مثل مثل صنعت سیمان پتروشیمی گاز می کار <تصفح> اون ریسکی ممکن سود صنعت از بین بره و ریسک آخری قوانین, ریسک قوانین قانونی قانونی ]ش شو شو. و مقررات یک قانونی عوض می شهد را حلش مدیریت استراتژیکه یعنی آینده نگری یعنی خود رو به خودش از الان آماده کنه برای یه همچی روزی برنامهریزی بلند مدت رای و یک قانونی تعدیر کنه مثل همینی که گفتم کم کمشه یا قام. این دوتا خیلی به نزدیکه. نزدیک هست اون سه تو همینیه به نزدیک هست کشور حالا نکته اینه که این ریسکا این ولی چی بود؟ ریسکه نرخ عرض ریسکه دامنه ریسک ایم. ریسک این مدلی که ما انجام داریم همه اینها تمام هم اثر دارن مثلا ریسک مدیریت این مودلتون قواشون ممکنه که نتونید معنیم یا اعتباریه و همریزه یا مثلا ریسک سیاسی موجب را ریسک اعتبار بشه همه اینا با هم در رابطه به این یه مودل چند وچیه حالا تو ایران صحبت که صحبت میکنه اینا ها دونه دونه را دا ریسک نیرونه هرز را داریم یا نداریم؟ نه داریم ریسک ندنگی را داریم یا نداریم؟ ریسک تورم را داریم؟ الهندالله همه را داریم؟ نگرم داریم مفیریت تصاله را اینجا ند پس اونجا هم که به جمعه مدن نرشتم تورم درصد، ریسک، 15 درصد، زمان، پنج درصد، جمعش و چهه این پونزهه عدد با توجه به اقتصاد ایران پاینه پاینه انتخاب کردی عدد کوچیکی گذاشتم اینو بخواهی دیگه ها بزرگش کنی بعد بگی مثلا هفتاد هشتاد ست درصد و بیزینس هم نیست که هشتاد درصد واضح داشته باشه درصد واضح باشه درصد در, <تصفيق> <درصد بازداشو باشه. تصفيق> <تصفيق> در حقیقت دوستان ریز یه مفهوم کیفیه کم میکردنی سخته ولی ما یه عددی گذاشتیم که به یه حد دقل برسیم بتونیم باهاش هاش تصمیم گیری کنیم ما همیشه باید یادمون باشیم مدیریت باید مسائل کیفی رو تبدیل به کم می کنیم تبدیل به عدد کم بکنیم می... این فقط مدیریت کردن هلقهی می تونیم آن و سر ریسکو کم کنیم بله، بله، اصلا من بارو اصلا این مردونه یک پیشه خیلی مهمه اعتباری خیلی مهندسان... مهمه اونایی که وارداتی هم میریزه و هم دیگه به های تمشایشو میزنه والا اصلا اون نفکر با هم این روی انسانی خیلی مهمه شما باید بدونی که نقاط مهم کارت کجاست یا تو کار تاثیر داره؟ رو آینده شو همون تاثیر داره؟ یه نیروی ماهر be ممکنه بتونی حفظش کنی و خودارشانی این سال ها کار دارم، اما یه رابطه باشه دیگه هم تو ببری هم سیستم پاداش سیستم پاداش همون باشیم باید استاد می رویشانی شد رو برسید ولی شما توی رستوران برید خب؟ که به اون گارسونه مثلا ما این پونسط تون رو میدن ببینید چه جوری به نورو میاره بعد چه جوری میکنه بعد چه جوری مثلا فضا تو گیده توی رستوران دیگه برید که ما این پونسط تون رو میدن گفتن سه درصد از کل فروش هم یا میزایی که تو سرویس دادی یا دو درصد یه درصدی مال تو باید ببینی اون چجوری سریش میده این هم باید در نظر بگیریم که اگه به کسی علکی پول بگیری یا پول زیادی بدیم آدمو و چیکار پیردیم؟ اون خراب شده دیگه اون دیگه پولی یعنی دیگه کاره باید پالاش یعنی دقیقاً سیستم تربایی بشه اون رو شکار میکنه ولی بابتش چیزهای اضافی هم میگیره خیلی نکته داره پرنامی شده تجربه کنید یه سیستمی هست تهوریه ایکس, به... ایکس دستور میده مدیر دستور میده شلاق میزنه اصطلاح این کارو رو کار رو کنید ایگرک چیه؟ مشارکت میکنه من ببینی تو ایران کدوم جواب میده؟ ببینی تو با چیا داری کار میکنی من تو که تو دانشگاه هم با دانشجوه فوق هم نمیتونم زیاد ایگره کنم بله ببینی؟ تو دانشگاه، دانش فوق لیسانس که سطحشون هم خیلی بالاست مثلا نمیتونم زیاد فضای باز کنم تا فضا رو باز کنم چهار تاشون الان نشستن این بالا شما باید ببینی کدوم کشوری آدمات فرهنگشی مثلا اون که این کارگره همه کرد باشن مثلا اینا یه فرهنگی باید باشون برخورد کنی یا مثلا ترک باشن جامعه شناسی فر باید فرمی کنی دیگه ولی جاپانی خیلی خوب است. خیلی خوب از دار. فیکر مدل کاسه می‌کاری؟ کارتینی چیابه؟ می‌کنم. مشعلی. کارتینی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی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 ما